بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين والاه وصحبه أجمعين اما بعد كتب لقرار با هم بشين و مذاكره داشته باشيم كتاب فضل الاسلام هست كتاب فضل الاسلام از نوشته هاي امام محمد وهاب است كتاب هاي زياد مين كم دواب نيوشته مثل كتاب توحيد كتاب كشف الشروحات قواعد اربعه اصول سته اين كتابارا درس داريم از جمله توسط ائمه دعوتي كه بعد از محمد وهاب آمدند افسان امام بودن کتاب فضل اسلام هست کتاب شهر دادن نشده از طرف اونه مثلا کتاب توحید رو فتح المجید داریم قول مفید داریم اومدن علما شهر داده ولی این کتاب شرحه اکتوب روش نیست و این کتاب یکی از کتاب های مهم در دعوته برای داعیه نوشته ما هر کدوممون اینجا نشستیم دعوتگری. دعوتگر برای خودش اصولی در دعوت خودش داره که ان بهش اشاره خواهم کرد. قبل از اینکه ما وارد اصول دعوت بشیم، اصولی که یک دعای باید روی اون باشه، یک دعوتگر که وارد میدان میشه، دعوت به سوی دین، نه به سوی دنیا. دعوت و اعلام، اعلام کردن دیگران به یک امر چه دعوت؟ ما اعلام می‌کنیم، ما می‌قولیم بازاریابی می‌کنیم یک کالای یک جنسی، این خودش اعلامه. اعلام می‌کنیم به مشتری که این چنین چیزی با این خصوصیات هست این اعلام اگر به سوی دین باشه این اعلام اگر به سوی دین باشه میشه دعوت خداوند اسمش گذاشته گذاشته دعوت قل هذه سبیلی ادعوا الی الله علی بصیره قل هذه سبیلی انراهمن ادعوا الی ما دعوت من به سوی خدا با بصیرت با علم حالا ارکان دعوت اون گفتم اصول دعوت ان شاء الله اشاره فاین کرد ما فقط باید قبل از اینکه وارد بحث دعوت بشیم هموت که اینجا در این آیه ششا قل طریق سبیلی ادع الى على بصیره که با بصیرتی این علم اون بصیرتی که قلب را بیدار میکنه قلب رو نورانی میکنه اون بصیرتی که چش به قلب میده که قلب ببینه به اون به میگم بصیرت ما برای قلبمون چشم های بزنیم که اون چش با اون بتونه ببینه حقیقت را ببینه کنه مسائل معنوی رو هر چیزی حسی نیست ما جسمی هستیم حسی هم داریم معناست اون دنیای معنوی هم داریم همه چیز محسوسات نیست چشم ما محسوسات رو میتونه ببینه ولی این چشم توان دیدن اون معنویات رو نداره اون چیزی که در خواطر انسانه در فاد انسانه در قلب انسانه در اون چیزی که از روش انسانه نمیتونه انسان با چشم جسمی که خدا بهش داده درک بکنه پس نیاز همونطور که ما نیاز داریم به چشم جسمی نیاز به چشم قلبی و چشم روحانی و چشم معنوی داریم که حقیقت امور معنوی رو باش درک کنیم و بدونیم و با این چشم با با این بینایی و با این بصیرت که دعوت رسول الله صلی الله بود انسان زنده میشه خداوند در قران میگه و من کان میتن فاحیینا و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کثی کم مرده بود زنده اش کردیم نوری بهش دادیم که با اون نور میان مردم حرکت بکنه این خدا داره مثال میزنه مثال اون نور هدایت اون نور بصیرت اون نور قرآن اون نور علم اون نوری که خداوند تو رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم. نور تنها قرآن نیست نور قرانه نور رسول خدا صلی الله تال و بدن بهش به شد به جای خودش نور سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. نور اسلام دین اسلام اینها نوره این نوری که اجازه الهی حاضر داره برای بحث فضیلت های اسلام بششاره فهم کرد این نور جز با کشف علم به دست نمیاد یعنی باید ما طلب علم داشته باشیم بریم به سوی طلب علم باید بریم علم شرقی رو بخونیم از اون چیزهایی که خداوند از معنا بهمون خبر داده چون گفتیم اون علوم دنیوی که خدا بهمون داده وسیله ای برای شناخت خدا نیستن یعنی وسیله ای برای شناخت اسما و صفات خداوند حقوق خداوند کسی میتونه بره دنبال فیزیک بعد بفهمه که نماز واجبه روزه واجبه کسی میتونه با توسط به علم فیزیک بره بگه که مثلا شرک درست نیست برات درست نیست میتونه شاید علم فیزیک یا علم شیمی یا علم زیزشناسی بهش دلالت بر وجود خدا بدن ولی دلالت بر حقوق خداوند مثلا رسول الله صلی اللہ علیه وسلم مثلا وقتی که صحابه را میدید ازشون سوال میپرسید یاد دین را بهشون شفاف یاد میداد مثل معاذ رضی اللہ که میگید سوار سوار اولاغ بدم خوش سر رسول الله صلی اللہ علیه وسلم بعد رسولا از من پرسید حق خداوند چیه؟ برسید خدا بر رسولش داناترم بر الله رسلم از مدت که یم دوبار سوال میپرسند جوابش میدم بعد رسد اللهم قال حق الله عليهلهبادا يرب او ولا يوش به این شاید. و این مسئله ای که اینجا دابهش یاد میده به ماز یاد میده. حق خدام بربندگانده خدا را فقط بفرن و شرك به خدا یاارت نمیشه با علم فیزیک و علمشیمی ثابت کرد. پس این شک خداغنده که با علم شررح ای تصمیشه و این شریف ترین گلومه هر علمی به اندازه ارزش شرف داره. مثلا تو دانشگاه ها میرن خب رده بالا مثلا گذاشتم تو کنکور مثلا امتیاز بالا گذاشتم برای مثلا رشته های مثل مثلا فیزیک مثلا میدونم رشته هایی که یا مثلا به علوم ای برمیگرده خب اینها یا شیمی اینا رتبه بالای گذاشتم براش برای چی برای اینکه بازار داره برای اینکه کارایی داره برای اینکه درآمدش بالاست ارزش این علوم برمیگرده بهش این ارزش اثرش عرضش کارامدی که در بازار داره و در جامعه داره علم شرعی هم ارزشش به اون معلومی که بهش میدازیم یا معلوماتی که بهش میپردازیم بهم برمیگرده آیا شریف تر از خدا آیا عظیم تر از خدا آیا کسی حضمتش به اندازه خدا میرسه که ما بهش بپردازیم هیچ کس و هیچ علمی به اندازه علم به خداوند علمی که به خدا برمیگرده اون عظیمی که آفرنده این همه کائناته هیچ علمی شرفش از این علم بالاتر نیست به خاطر همینی که ملائکه که خدا خلق کرده حیواناتی که خدا خلق کرده ماهی های ماهی ها و حیوانات و پرندگان و نمیدونم کل اون حیوانات رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند استغفار میکنن برای طالب علم علم شریعیت طالب علم به خاطر شرف علمشون استغفار میکنن طلب مفردی خدای اونها رو به یمرس چرا دعا میکنن در حت چرا این طالب علم علم شرعی که علمی خدا بطیان بر دستوند فعلم انه لا اله الا الله علم خداوند فعلم چرا این علم چه شرفی پیدا کرده في به شرف معلوم به خاطر اون شرف اون علمی که داریم ما به شورت اونم و ملائکه هم از باب سپاس بالهای خودشون را زیر پای طالب علم میکنن خب حالا ما در نظر بگیریم با توجه به این فضیلتا، اینا گفت فضیلت علم شرعی برمیگرده به فضیلت اسلام چون ما داریم کتاب چی رو بکنیم کتاب فضیلت اسلام، اسلام چه فضیلتی داره؟ خب از فضیلت این علم شرعی، اینا اصلا هر چنکی بیش از اینه. یرفع <مت insan> الله الذين من الذين اوتی العلم درجات، شهدا الله انه لا اله هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقرص. پس من در رتبه ملائکه قرار میده و خداوند جواهش را را بعد از جواهر خودش یاد کرد و دیگر شرفی که نسبت به علم شرعی در قرآن و در سنت اومده این شرفش همش برمیگه به شرف خداوند، مکونت خداوند، جلالت خداوند، عزمت خداوند، قدر خداوند که خداوند در قرآن گله‌ای میتونه از مخلوقات که میگه تو ما قدر الله حق قدره انسان چقدر به دنیاش ارزش میده، میگه دانشجو نمیذارم علم نمیذارم بازرگانی و فلان و فلان و میخونه برای اینکه سودی از دنیاش داشته باشه ولی چقدر هستن که خالصانه میان طلب علم بکنن برای اینکه سودی در آخرت داشته باشن این فضیلت ها را داشته باشن رو فرش بکنن دیر باشه ماهی ها و پرندگان و نمیدونم خزندگان و جانوران براش طلب استغفار بکنن چقدر از بندگان سپاسگزارم قدرشناسن و قدر این علم را میدونن محروم کسانی که از این علم شرعی محروم بمانند و نران دنبال علم شرعی و نران دنبال کسب اون علمی که خداوند بهش ارزش داد، قائل شده و در قرآن گفته هل يا ذو الذين يعلمون والذين هم مساوين کسانی که ميدانند و کسانی که نميدانند حالا این گفتم یه پیش زمینه بود در بحث علم، شرف علم، فضیلت علم بر ميداد و فضیلت اسلام. ان شاء وارد کتاب که شديم، ان بیشتر الله بيشتري برامون مثال توضیح خايم ده. ما در دعوتمون چند تا اصل و اساس داریم انما با در خصوص دعوات اساسیات دعوت خودمون باید بدونی دعوت اولی روحی که داره علم به دستور خداوند به رسول الله صلی الله علیه و سلم فاعلم انه لا اله الا الله این اولین چیزی هست که خداوند متعال بر رسول الله صلی الله علیه و سلم واجب میکنه و این راه راه پیامبر و راه صحابه و تابعین مودب هل هذه سبیل ادعو الى الله على بصیر ین علی علم امام التبد اولین چیزی که داعی با دنبالش باشه علم شرعی اون کسی که جاهله نمیتونه دعوت بده مثل نگاه کنید من مسئله دنیاوی گفتم شون دعوت همون اعلامه همون تبلیغاته تبلیغ بسیاری چیز دعوت اعلام کردن یک چیز دعوته شما نگاه کنید یک کالایی داریم یک کالایی اصلی یک کالایی نقلی یک کسی خبیره یک کسی ترفش کارش این اجناس الکترونکیه میدونه کدام جست اصلی نقلیه اهل غشت و تقلب و کلاه برداری نیست میگه این جنس ارزشش بالاتر این جنس ارزاش پایی تره از علم با توجه به تجربه با توجه به شناختی که داره از علم میگه آیا این شخص مثل اون شخص نادان و جاهله که برای سود بیشتر تبلیغ اون جنسی میکنه که اصلی نیست نقلیه آیا این دو یکی که صادق در خرید و فروچش در معاملش و تشخیص میده خوبه از بعد و نست باب نصف برای مشتری میگی این بهتره از اون مثل کسی که تغلب میکنه مثل کسی که از جهل به مردم کالا میکروشه و تبلیغ جنس بد میکنه مثل همن؟ نه مثل همنست همونطور که ما در امر دنیامون همونطور که در عمر دنیامون ما دنبال نصیحت و نصفی کسی ما را نصیحت بکنه راهنمایی بکنه در دینم همونطور ما نیاز به نص همونی که اونجا میپسندیم باید در اینجا هم باید بپسندیم این نیست که در دنیامون نصیحت رو بفرزینیم در دینمون نافذین و نصیحت دوز با علم با چیز دیگر حاصل <سؤال> نمیشه من چیزی که دایره برش نیاز داره که در ضمن کتاب فضل اسلام بهشون میفردازیم بحث عمله خداوند در قرآن چندین جا به بحث عمل اشاره میکنه مثلا فرمودید خداوند خود ان صلااتی و نسکی و ممات لله رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین خداوند دستور بده به رسول الله صلی الله علیه و به نماز، به قربانی و تمامی کارها برای خداوند یک یگانه و رسول الله صلی الله علیه و در انتشاء خدا بهش میگه بگو و انا اول المسلمین من اولین کسانی که به این امر عمل میکنم. تامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم دستور به نیکی میده خود تو فراموش میکنی. این خیلی مهم الان اشاره در بحث یعنی در بحث ان شاء الله بهش اشاره خواهم کرد. پس عمل خیلی مهمه. باطرا همین دستوره و الاس وقتی که اشاره میکنه که اصل قصران و زیان را اشاره بهش میکنه که انسان ها در قصران و زیان و العث خدا بعد از قسمش میگه ان الانسان الذی یقصب درسی که انسان در خسارات و زیان مگر اون چانس چار سن دیگه ایمان جز حاصل نمیشه باید انسان علم شهادتین داشته باشه که مؤمن بشه الا الیدین امن وعامل الصالحات و تواصو بالحق و تواصو در سوره ولعث شده اولیش علم دومش عمل دعوت به سوی تواصل حق دعوت به اون علمی که یاد گرفته و اون چیزی که بهش عمل میکنه و تواصل به صبر صبر اینا 4 تا رکن اصلی دعوت هم چرشن که ارفکان دیگر دار دعوت اخلاص اله الله الدین خالص انسان باید خالصانه به سوی خداوند دعوت بده پنجم اینکه دعوتش به سوی اون چیزی که مهم و مهمتر از دیگر مهمات دنبال مهمترین باشه درست خیلی چیزها هست مهمه خیلی چیزها هست مهمه ولی ما باید به مهمترینش بپردازیم. حالا اینو یکم کم باترش میدونن بحث مهم و اهم چش ومیش این که داعیه هر دعوت باید اخلاقش نیک باشه، بارش نیک باشه، کردارش نیک باشه، سخنش نیک باشه. دعوتش رو پیانبران خداون دیگه دستور داده ما پیرو و رحرو و راهان ها باشه مثل موسا و هاروم میگه خداوند به آنها توصیه میکنن که به فرقا چینی میگن و ق آله لینا دید در بازاریابی مثلا مثلا در بحث مهمانداری ها خیلی کسانی انتخاب میتونن خوشرو هستن خوش اخلاق و خوش برخوردن این یکی از اسباب و وسایل چیه جذب مشتری خب داعیه برای که مردم را جذب کنه به سوی باید خوش اخلاق خوش برخورد باید نیک رفتار باشه نه اینکه با تندی با خشونت و هفتمین و, و اصل از اصول دعوت حسن ظن به خداونده امید والله عند حسن ظن عبده به انسان بوت کامونش بخدا نیک باشه لازم نیست که ثمره دعواتش در امروز و فردا بهش برته لازم نیست البانی رحمها الله 90 سال 94 سال عمر کرد 70 سال نشسته برای تعلیف و تحقیق ثمره ای که البانی رحمه الله بش یعنی و جزاء و خداشی که به البانی بعد از حیاتش رسید بیش اون چیزی که در حیاتش بوده کسانی که در زمان حیات آلبانی کتاباشو خوندن خیلی کمترن به نسبت کسانی که الان دارن کتابای آلبانی میخونن و استفاده میکنن امت اصنامی بیشتر شدن، طلاب بیشتر شدن، آگاهی طلاب بیشتر شده آلبانی جز عداوت و دشمنی دش دش دش دش و زندان بودن و نبیدم عثیر بودن چیزی که نداشت در حیات زندگیش در یک کلبه و خونه فقیرانه زندگی گردتا این که از حیاتش رفت ولی الان اون ال غیر از این که خداوند در امثک رسولا بیان میکنه در روز قیامت خداوند پیامبرانی که فرستاده پیامبری خواهد آمد در روز قیامت رهروان زیادند و پیامبری خواهد آمد و رهرو بشید یک نفر دو نفر بیشتر قرار بر این نیست که ما ثمره و نتیجهمون را الان بگیریم همون یک نفر همونطور که خداوند در بحث صداقت میگه که یک درهم شاید از هزار درهم سبقت سبقت بگیره شاید یک درایه توسط تو هدایت بشه بهتر از اینی که هزاران نفر هدایت بشه تو یک نفر بسازی ولی همون یک نفر امتی را بیدار بکنه همون شخص بشه ابن تیمیه همون شخص محقق وهاب همون شخص شاپئی احمد ابو حنیفه خودمون یک نفر باشه فضیلت تو اون اشخاصی که بعد از اون شخصی که توسط تو هدایت شده به تو برمیگرده حالا این از مسائل فضیلت در اسلامه که خداون برای امتش نوشته من جاء الى هدا كان له من و اجر مثل عجر من لا ينقص من وجور یمشی بدونیکت اجرون کسانی که بعد میان کم بشه پای اون شخص نوشته میشه پس انسان همیشه شالده نیکی بذاره چون این شالده ای که گذاشته میشه سبب میشه که کسانی که بعد از او خواهند داشت بدون اعتماد بکنن و این خیلی مهمه همین بحثی که بشه را از اصول دعوت بحث حسن ظن به خداوند حسن ظن به گمان نیک به خداوند جمانه نیک یعنی تو اونطوری که به حسن خداوند حسنه زن داری جمانت به خداوند است خداوند با تو همونطور تعامل میکنه اگر گفتی من ندارم و من نمیدونم مردم اذیتم میکنن و چرا من بدبختم و خارم و ذلیلم همونطور در همو خاری و ذلت تو اینه ولی اگر گفتی امتحان خداست ابتلای خداست بران خودش امتحان کرده شب کردی تحمل کردی حتما خداوند حکمتی داره در کارش اینجا هست که در اون دعوتت برکت میفته و الا از برکت دعوت، از برکت غیل معمل محروف خواهیم. یک شخص افسرده، روانی، گوشگیر، منزوی خواهی شد. خیلی مهمه در مسئله دعوت اینی که در همین بحث حسن زن میاد. اینی که از اصول دعوت اینی که این حسن زن در صورت که ما حسن عمل داشته باشیم. نه اینکه ما بر رفتار باشیم، بد اخلاق باشیم، بد خوب باشیم. اهلا و نموزه‌ی سنت و اذکار نباشید با توکل داشتیم که برکتم تو دعوتم بیوفته این حسزن ملپارقه گناه میکنه معفیت میکنه بعد با هم داره خداون خیر و برکت تو دعوتش و رزق روزیشو خداون بنازه با این چیزها خیر و برکت نمیاد برگردیم بهمون اصلی از اصول دعوتی که بهش اشاره کردم بحث اهم اهم فالاهم مهمترین گرفتن در دعوت ما شک نداریم در بحث دعوت اینکه تمامی پیامبران مثل نوح ابراهیم موسی و دیگر و ولقد بعثنا فی کل امه رسول انا عبد الله و اشهد ان رب الطاغوت اعلی تمام دعوت به چی بوده عبودیت خداون عبودیت مطلق عبودیت مطلق نماز روزه همه خالصانه برای خدا باشه هر اون چیزی که فرمایشات که خدا داشته حاکمیتم جزئی توحید حاکمیتم جزئی از عبودیت حاکمیت تحکمه به وسیله خداوند توحید حاکمیت جزئی از توحید چیه азбаб ташриъ ин ҳукм илло лиллоҳ ҳукм ала ходовода. амра ла таъбуду ҳукм ала ходовода. ходос ҳукм мекунад. ҳуқ барои қазо, ҳуқ барои муаллим саркласс, ҳуқ барои касе ки давори мекунад байни ду нафар дар амри талоқ, дар амри арс ва мерос, ҳуқ барои ҳама кас ки аҳкоми ходовода ва расулишро чӯш базоранд. этоъат аз аллоҳ ва расулиш будан, қул атиъ аллоҳ ва атиъ ар-расул. ки си جحود بکنه استکبار بکنه توشید حاکمیت رو بگه من قبول ندارم این شخص ملحد کافر اند دیگه اسی توحید حاکمیت رو بگه من قبول ندارم یعنی تحاکم به خدا خدا رو میگه ان الحكم الا لله این تحاکم برگشت و رجوع به خدا را قبول ندارم این شخص دو تا کفر چی شده کفر جسود و استکبار بگه قبول ندارم شاید هم تو که من قبل با حضرت امام صادق السلام بحث در امر در فرعی از فروع دین در فرعی بشهر اکراه بشه كتب علیکم القتال وهو کره لكم و له جنبه ولی کره در برای انسان شاید کره باشه اسباب سختی و مشقت نه از باب اینکه انسان قبول نداره اصل شرع خدا یا مسئله بحث تعدد اون قبلان قضا رو داد تو بحث نواقص اسلام برای زن سخته، نمیتونه بپذیره ولی اینکه آیا کره داره چون خدا نوشته یا چون که نمیتونه تحمل بکنه چون خدا خواسته از وجهشون که تحملش نداره چون که تحملش نداره اگر تو خدا این تشریع کرده که بیشش جحود و استکبار به خاطر همین وقتی که بحث اون بدری میشه با زوبر خصومتی که داشتن در امر دنیوی رسول اومد شب زوبر داد اون انصاری اون بدری ناراحت شد دوست تو اكان ابن امك شوف بسات اموت بود حق به جانب اون گرفتی و حق به او دادی چی خطر این حرف سنگین سخت ده پیамبر خدا در جواب به زلخویسن میگه و الله ان عصیتو کتاب و خدا داره در اینجا به خاطر امر دنیوی حق بجانبه بعد اینايه نازل میشه فلا لا یؤمنون حتى يحكموك فی ما شجر بیننا ثم یجد قیانفس فله وربك لائقان من ترى فداه كي ايمان ندران تا انك تو حاكم بينه بهاش خب الان نفي الايمان يعني نفي اصل الايمان يعني كمال الايمان يعني ان شط ان بدر مرتب شد چون اينجا اعتراض كرد بر حكم رسول الله, الله صلوات الله عليه وسلم خير همت ايمه ميگه اينجا نفي نفي كمال الايمان نفي از چرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتي كه حاطم ميبال تهيش تو كه در جواب عمر وقتي گفت بزاد دادنش رو بزنن قال يا احمر ما ادراك لعلم الله صلى على قلوب اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم باع اهل بدر قول انتم شنو قلتوا ترشي اعملوا بكولين وشو ما يغفرن اعملوا ما شئتوا فقط غفرت لكم شو ما بغفريدم امين طيب رحماتك ميجي ممكن يصير صغائر بشه غنايه صغيره بشه وممكن يصير شرك اكبر بشه شيء اكبر وخد هي تغفر لي ذاته فقد يك محمل ميونه ويك دلالات ميونه وان هم دلالات برشي دلالات بغنها الكبيره قدا من غنها الكبير وله غنها بد گناهان که کبیره اصل ایمان رو نقض میکنه ایمان رو از ما نمیگیره بلکه کمالش رو خدشه‌دار میکنه یعنی ایمانمو رو ناقص میکنه شناخت آیات خیلی مهمه انسان بفهمه آیات سبب نزولش چیه چرا نازل شده این نفی اصل کمال حتی اگه این بحثا رو در بحث التهاوی شرح شدیم اینجا جای بحث و شرحش نیست بعد اون چیزی که الان مهمه در همین حاکمیت التحکوم و بده شارح گویا این حکم الا لله و من لم يحکم بما انزل الله فاولاتهم اینها جزئی از توحید الوهیت جزئی از توحید اطاعت خداوند و فرمانبرداری از خداوند کسی بخواد جحود و استکبار بکنه ملحد شده زنديق شده و این تحاکم و این رجوع و این حاکمیت تنها به سوی دست دز قطع کردن و اجرای احکام و حدود الهی نیست اجرای حاکمیت در عقیده اولین چیزی اجرای حاکمیت در عقیده و در اتباع از رسول الله صلی الله علیه در عقیده اخلاص عبودیت برای خداوند داشته باشیم دچار شرک به خدا در در ذبح و قربانی و در نظر و نیاز و در قسم و در هیچ کدوم از اینها به غیر خدا نشیم توحید حاکمیت در عقیده اسماء و نصوص و اسماء و صفات خداوند را انکار نکنیم تعبیر نکنیم تحریف نکنیم تأویل نکنیم این توحید حاکمیت در چی است این تنازع توفیه بر دوه لله و الرسول توحید حاکمیت داشته باشیم در سلوک و رفتارمون اخلاقمون توحید حاکمیت در عبادت خودمون داشته باشیم در فقهمون صلی كما رايت من يصلي خذ عني من اسك من نماز میکنم حجتون انجام بده طوری که نه من این حاکمیته این حاکمیته برگشتن و رجوع به قران و سنت جزئی از این حاکمیت اجرای احکام خداوند توسط سوال اجرای احکام خداوند تبسط جز اصول دعوت یا فرع دعوت اینکه ما یک حکومت اسلامی داشته باشیم این اصل دعوت یا فرعی از فروی دعوت یعنی ما شر خداوند ما رو مکلف کرده برای که حکومت اسلامی رو تشکیل بدیم یا نه هدف خداوند چیز دیگریه هدف خداوند چیه هدف خداوند نبودیته به تمامی معالیش نبی فرد از افراد نه فقط نماز نه فقط روزه بلکه توحید حاکمیت گفتیم در تمامی چیزها مثلا ما از کتاب داریم کتاب مثلا که بودن برحمت خدا رفتن مثل موجودی در کتاباتش یه نوع در توحید حاکمیت نسبت به ما موقف توحید و خاص حکام نیست برای همه اشخاص حاکمیت و رجوع همون که در بحثی گفتیم ابن زبیر و اون بدری داشتید و لا و ربک لا یؤمنون حتى يحكموك حاکمیت در شان اون الله صلی لا یؤمنون инجا барои он шахси вадили буд. хуб инجا масалан муодиди мегир масалан аз гуфтеҳош ман фақат чанд то тик ҷумла мехонам ва ба назар мегуринам ки оё ин ҷумла дуруст ё не. масалан мегир ин масалати қияда ва заҳама қияда ва заҳама манзур хукумати ислами ин маҳия масалату غايه الدين هدفها دي الحقيقيه هدف الدين حقيقي اقامه النظام الامامه الصالحه ابو عشان برفا كردن حكومه اسلاميه يا ام امامه راشد هذا هو الغرض الذي من اجله فرضت الصلاه انهاين هدف بوده كي هدف روزه ونماز بخاطر اون فرس يعني نماز و روزه من اجله فرضت الصلاه والصوم والزكاه من اجل يعني براي حكومات نماز روزه زکات حج ليس معنى تسميتها بان انها هي العبادات بل معناه انها تعد الانسان للعبادات اینها نه اینها عبادتن بلکه اینها وسیله برای عبادتن عبودیت چیه حکومت اسلامی و هذه دوره تدریبیه لازم یعنی نماز و عبودیت یک حالت یک فادگانی داره که در اونجا یک رزمایش یک دوره تمریا تمرینی داری که عضلاتتون قوی بشه برای تأسیسی یک حکومت سبحان الله چطور میشه اجرای یک حکومت هدف باشه ولی در دعوت نور نبود دعوت نوح و دیگر پیامبران و قدما سی ابراهیم كل پیامبران ان عبد الله وشنبط یقوم عبد الله شعيب لوت نوح همهشون یقوم عبد الله چطور هم ابراهیم علیه السلام وقتی که مجلو پدرش چرا نرفت یوریگیری بکنه و دنبال حکومت باشه تأسیس یه حکومت تأسیس دولت موسو علیه السلام یه دولت رو تشکیل داد یک حکومت رو تشکیل داد هدفش این بود یا هدف نجات مردم بود از عبودیت بندگی و بندگی برای غیر خدا هدف نجات مردم بود ما نباید بین اهداف و وسائل ما هم نباید بین اهداف و وسائل قاطی بکنیم حکومت وسیله هست نه هدف از کجا دلیل قرآن می فرماید الذین امکن فالارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف والنهي عن المنكر الذين اما كانوا كزانه ما اگر تمکین بهشون دادیم قدرت بهشون دادیم اونها نماز رو برپا میدارن یعنی رئیسن به حک وسیله برای برپا داشتن نماز و روزه و زکات و امر به معروف و نهی از منکر وسیله ها نه اینکه اصل اگر این اصل بود پیغمبران غافل بودن از این اصل یانو من بحث اهم ما هم بحث اهم و کردم اون اون اهمیت دعوی ما اون چیزی که برای ما مهمه اینکه گفتم ك... بحث توحید حاکمیت جزئی از اصول شریعت اله توحید حاکمیت برای حاکم برای قاضی برای طالب علم جزئی هست از اصول دعوت ولی که اصل چیه عبودیت خداست اصل امر معروف نه از منکر اصل اخلاص عبودیت برای خدا بنده اجرای نصوص قرآن و سنت این اصل و یکی از افراد این عصر حکمه که این حکر را خداوند برای کسی که به قطع میده نه اینکه بسیار آن انسان تلاش نکنه و جز مهمات دعویش نواشه بلی که بحث من بحث که جز مهمات دعوته بحث ما این نیست بحث ما اینکه اولویات را در دردار بگه اولویات در چیه؟ اولویات راه پیانبرانه اولويات راه ابراهيم اولويات راه روح اولويات راه مصطفى الله صلى الله عليه وسلم رسول الله الله عليه وسلم دار مكي هم نجات مشكله اين بود از شر با درست كرده بودن اين اولويات دعوت خب بريم به بحث از خود كتاب فضل الاسلام قال رحمه الله كتاب فضل الاسلام قال رحمه الله باب فضل الإسلام و قوله تعالی الیوم اتممت لكم دینکم و اتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا و دو تا دیگر میاره و احادیث در این باب میاره که ان شاء بنده اون چیزی که الان اینجا بشاشاره میکنه بحث فضیلت اسلام یا فضیلت اسلام در این کتاب مؤلف میخواد بحث فضیلت اسلام و اون ویژگی های خداوند به این اسلام داده میخواد یه قسمت به این اشاره بکنه آیاتی که میاره ما باید مقاصد این آیات رو بدونیم وجه استناد و استدلالش بدونیم که شما بهش اشاره پرین کرد جایی بحث بدعت میکنه رو شاید یک شخصی دیگه بحث بدعت که در این کتاب چندین باب بدعت میپردازه چه ربطی داره به فضیلت اسلام جایی به بحث حکم انتما به احزاب و فرقه ها و گروه ها و جماعت ها میکنه طب این چه ربطی به فضیلت اسلام داره؟ این ها بحث هایی ای هست که ج الله در این کتاب خواهیم داشت. وقتی که بحث از اسلام میشه فضیلت اسلام بحث از فقط شهادته نیست که در قث جبره ای اومدهقالعمل اسلام قالکش شد و اعل ن همه قییمثرات آخرش. فقط بحث ظاهر نیست این اسلام فضیلت اسلام. بلکه وقتی که اسلام میاد بحث از ایمان و هم هست کلمه ای هست اسلام که ما در عقیره میکنیم هرگاه اسلام بطورم متفرق یا یک یه فقط این کلمه به تنهایی بیاد دلالت بر ایمان هم میده هرگاه با هم در یک جمعه بیان معناش با هم دیگه فرق میکنن آنها این بعدا به بهش خواهیم پرداست پس اینجا میخوام فضیلت اسلام فضیلت ایمان فضیلت احسان ما میخوام اینو بررسیل کنیم این اسلامی که که با اومدن اون امت اسلامی برترین امت ها میشن کنتم لناس. یعنی از بین تمامی اون امت ها این اسلام برتری یافته چه اسلامی برتری یافته این اسلام چیه وجه برتریش در چیه ویژگی این اسلامی که خدا اینطوری ازش میکنه کنه خیر امت خیر امه بهترین برترین ای اینطوری ازش یاد میکنه در مقابل دیگر امت ها در چیه هست شالله در این کتاب قراره که بهش بپردازیم و بَرَسِي بُقِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُ بَحَمْدِرُ صَلَى اللَّهِ محمدِ وَلَا